تبت یادا ابی لهب ربطش را ازمی بعد از اینکه شما اعلام مقاومت کردی با دشمنان خداوند شما را فتح و پیروزی می ده و دشمنان شما را از بین می بره دشمنان شما را از بین می بره چنانچه اینجا ذکر نابودی دشمنان است تبت یادا ابی لهب و تب وقتی که ابو لهب که اموی حقیقی رسول الله است برادر عبدالله است ابو ابو وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه تب میگوید تب للک یا محمد الی هذا جمعتنا الا یا ذبی الله این جمله را گفت گفت که نابود بشی ای محمد آیا برای این ما کردی بودی که رسول الله گفت قول لا اله الا الله تفلحون الله جواب اشرا داد رسول الله جواب نداد تبت یدا ابی لهب و تب هر دو دست ابو لهب از بین بره نابود بشه و تب از بین رفت تبت یدا اولی جمله دعایی هست و تب جمله خبریه است متوجه هستید خدا اول اول گویا نفرینش کرد دعایش کرد که تبت یدا ابی تبت یدا ابی لهب به قول این هست که میگه اهلکه الله وَتَبْ یعنی وقد هَلَك اَهْلَكَهُ الله خُدَو را از بین ببره وقد هَلَكَ از بین رفت لذا تبت یده ابي لحب معنیش اینه که دو دست ابو دو دست کنایه از کل هست. دودست ابو لحب از بین بره و تب فیصله شد دیگه تمام شد از اون یعنی الله تعالی فیصله کرد ابو را خدای عزواجل بد جوری کشت ابو با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اسمش قبلا گفتیم که اسمش عبد العظا بود عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اما او خیلی با رسول الله مخالفت کرد رسول الله را از همه بیشتر اذیت کرد زمانی که رسول الله به همون سوق می رفت خدمت شما در سوره جن داستان را ارز کردم که رسول الله رفت به سوی سوق اکاز در وسط جنات آمدن قرآن را شنیدن بعدا اونجا یک نمایشگاه عرضه کالا بود رسول الله اونجا رفت و تبلیغ میکرد مردم را میگفت مردم چنین کلمه به شما یاد میدم بگید رستگار میشید هیچ معبودی به جز الله نیست رسول الله در بیان مردم می گشت, گشت میکرد به اصطلاح و داشت تبلیغ میکرد یه صحابی میگه اون وقت ایمان نیاورده بود میگه من فردی را دیدم پشت سرش هر جا رفت و به مردم میگفت مردم این دروغ میگه هرچی میگه باور نکنید این دیوانه شده بعد من پرسیدم این کیه که پشت سرش داره میره؟ آدم خوش شکل و خوش چهره بود خوشگلی بود به اصطلاح گفتن این امویش هست ابو لحبه هر جا رسول الله تبلیغ میکرد این میرفت و بر رسول الله تبلیغ میکرد رسول الله نماز میخواند این میرفت و مزاحمت میکرد خودش با همسرش ام جمیل لذا الله عز و جل چرا ذکرش کرد و الا اموي رسول الله بود چون این خیلی دشمنی کرد بعد از اینکه مرد میگویند الله و عالم خدای تعالی این را به مریضی گرفتار کرد چنان مریض و تا دیر وقت خونش ماند و بدنش بوسی تعفن داشت چنان تعفن داشت که هیچ کس نزدیکش نمی رفت تا اینکه از بین رفت همون خراب شد و هلاک شد و بعدن تمام خانه را گند گرفت بوی گند گرفت و کسی نزدیکش نمی رفت آخر اش نزدیکانش به یک غلامی چند تا شطور دادند که این مزد و این شطورها برو اون را دفن کو اونم برد جمعش کرد و برد یک جایی انداخت و اون را بخاک کرد لذا الله تعالی اون را به بعد جوری الله در دنیا معاخذش کرد و در آخرت تو این سوره می خانید الله می فرمد ارز کردم ابو این از کنم که کنیش هست لهب به شوله آتش چون این دارای شعله آتش هست این نصیبش چی شد جهنم شد ابو لهب یعنی صاحب جهنم مالک جهنم مالک اون شعله تبت یدا ابی لهب و تب و شد از بین رفت ما اغنا عنه ماله و ما کسب دف نکرد از او مالش و آنچه که کسب کرد هیچ چیزی را دف نکرد یعنی اعمال شرکیست بیو فایدهی نبخشید سیصله نارا ذات لحب بین خاطر ابو لحب میگن ان قریب داخل میشه در آتشی که ذات لحب دارای لحب و دارای زبانه هست زبانه میکشد و امرعته حمالت الحطب و زنش حمالت الحطب حمل کننده هی زمحاست بعضی میگن حم، حمل کننده هی زمحا به این معنی که هر جا رسول الله صلی الله صلی میرفت هیزم جلوی راش میانداخت تا اینکه بالاخره اذیت بشه مزاحمت بشه خارها بد در پا و در بدن آن حضرت بره اما بعض میگن حمالاتل هتب کنایه از سخن چینی حمالت الحتب در عرف عربی زبان عربی سخنچین را می گوین. کسی که آتش جنگ را روشن میکنه این همش می آمد مردش را و شوهرش را این تحریک می کرد که برادرزاده تمام قوم را خراب کرد به سمت گمراهی برد تو چرا ساکت هستی؟ هی hey, تحریم میکرد و شوهرش را فرستاد تا بر علیه رسول الله کار بکند حمالت الحتب به این معنی سخنچین بود فی جیدها حبل من مسد در گردن او ریسمانی هست از مسد مسد میگویند ارز کنم که از برگ نخل خورما و نخ اینا ریسمانی مخلوط یک ریسمانی میبافدند بافد می و خیلی سخت بود لذا الله میفرماید چنان ریسمانی از مسد که بگردنش هست و هرگز این ریسمان دیگه کنده نمیشه بعضی میگن این عذاب اون ام جمیل هست اون زن ابو لحب هست که در آتش اینطور آویزان هست مثل کسی که اعدام هست در اونجا هست و بعضی میگن نه این در دنیا همیشه این عذاب دنیا هست در واقع این برای بیان خصوصات است همونطور که حملات الحتّ بیان سخنچینی بود این بیان خصوصات است بدبختی است خصیص بودنش هست